الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآل الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائما على عدائهم عشرين اللهم اشفنا جميع المشردين وارحمنا يا الرحمن الرحيم بحث در کلمات مرحوم استاد راجع به ضرران ان بین نسخ و تخصیص بود که متعرض شدیم چون فاصله شد یک اجمالی رو از اون بحث رو مطرح بکنیم بریم بحث جدید ان شاء از شد مرحوم استاد پنج صورت در دران ان بین نسخ و تخصیص مطرح کردند و تفصیلش داده شد تا من قرار زمین و اون این که درمانه هم بین نفس و تخصیل در کلماتیشون ناظر شده اگر که هم به نفس و تخصیل در مقام ثبوته گاهی تو مقام اثباته مراد ما از مقام ثبوت این است که واقعا بین نفس و چه فرقایی هست چولم نفس در کجا سخصیل داره این یک بحثه که اهل سنت این جداگانه جدادانه من کردن اون خواره به اصطلاق و نکات فرق و امتیاز یه بحثی دیگه مقام اثباته مراد ما از مقام اثبات اگر موحید داشتی باشیم که احتمال داره نصف باشه یا احتمال داره تخصیص باشه و این مطلب اولا مقام اثبات من این که در صحوتش باشه یعنی ما باید قبول بکنیم یک جاهایی مثلا به که تخصیص هست نصف نیست یا نصف هست تخصیص نیست اون وقتی مقام اثبات گیر بکنیم مثلا دیر دو علمای احل سنه مثل ابو هنیفه میگن اگر اول خاص آمد بعد آم آمد اینجا این, این آم ناسخه تخصیص بیگه معنی نمیدیم خاص اول مخصصه این عام بعدی ناسخه خب اگر ما این مبنا رو باید شدیم و در یک جایی دوست رو یک خاص آم بیا تاریخش رو ندنیم خایین بحث اثبات معنا داره یعنی نمیدیم آیا آم اول بوده یا خاص بوده؟ اگر آم اول باشه تخصیص میشه اگر خاص اول باشه نرسخ میشه اینجا این معنا داره این بحث مقام اثبات معناش در اینجا تطورب میشه که نمیدونیم آیا مقدم بوده آم مقدم بوده یا خاص مقدم اما اگر ما همیشه بگیم خاص برون مقدم باشه همیشه تخصیصه قالب بینید که اصولا خاص طبیعتش اینه که همیشه تخصیص برون مقدم باشه. که شابعی هم مثلا عقیده شمیه و ما مثل مرمو زگی مشکل به این عالمان ما همیه. که خاص همیشه مخصصه تو که دوران هم بین نسل تخصیص معنی نداره حالا مخاد مقدم باشه مخاد مؤخره باشه ولی زا از کردی مواردی که اصداد به عنوان دوران هم بین نسل تخصیصه برده خیلی دقیق نیست، بعضی از موارد مال مقام ثبوته بعضی از مقام اثباته. و خود ایشان چون در مقام ثبوت قائل نیستن این بحثیت که اهل سنت کردن روی بعضی مبانیشون هم نمیاد نه روی همه مبانیشون این یک مطلب و اما در خود این مسئله غیر این جاعتی که مقام ثبوت اثبات مطلب شد از کردین چند تا دیگه هم هست حل عویسه یکی این تو اصولا قائل بشین نه. ن به منبع نص تخصیص نمیشه چون نص خیلی مقدمات میخواد تصویر میخواد بیان میخواد خصوصیات میخواد چون برداشتن حکومت تخصیص چون جنب بیانی داره مشکل نداره اما نص اصولاً یه مشکلاتی داره با توضیح بشه با تبیین بشه چه مخاط نص کتاب به کتاب باشه نص کتاب به سنت باشه سنت به سنت باشه هر چی میخواد از این قاعده چون نص طبیعتاً که الان هم در اوثق اوغلا اگر بخواد نسخ بکنن مگه تو مؤسسان تشکییل میدن یعنی یک مجلس اعلای رو تشکییل میدن یه دیگاهای مخصوص رو قرار میدن که فلان ماده قانون اساسی رو بردارن نسخ طبیعتش اینجوریه مثلا طبیعت نسخ اما یکی دو ساله باید داشته باشیم یکی هم در احتمال تخصیص سوش باشه یا احتمال نسخ به این مهرا اصولاً نسخ قابل نمیشه درارا پیدا نمیشه اصل نکته درارا یعنی طبیعتا نصر در قوانین سنگین تر تا تخصیص ولذا اصلا نوبت به دورانو به این حرفانه نیازده یعنی نص باید کاملا شباهد واضحی داشته باشه تا ملتزم بشین و اقلا به موزرد این یک که آم خاص همون تخصیصه چون نصر طبیعت شهر طبیعت فرق نصر غیر از طبیعت تخصیصه دو طبیعت قانونی مختلف دارد این یک راهه که این راه وا الان بیشتر در قوانین شه، همین راه رو میرن. اصولا در قوانین میگن دروانه انبی منصوب نسخ و تخصیص معنا نداره. چون اگر بخواد نسخ بشه، باید یک مجلس موعظسان باشه، یه گروه خاصی باشه، یک شورای خاصی تشکیل بشه، اعلامواد بشه اون ماده معین باید برطی بشه. اون وقت باز اون تدویر ماده دیگه بکن، باز اون تو قانون اساس به جای ماده قبلی قرار از یک مقدمات دقیق تر و ذریفتر این میخواب و لازم هیچوه خب درانه هم به نصف تخصیص نمیشه این محضای که تو روایات چه هم بر تخصیصه این روایاتی که ما داریم که هم بر تخصیصه جایی نسخ نیستن تصور درانه هم این بحثای ذهنی پنج قسم قسم اول دوم، اینا فقط است یا به الله اصولا یا مثلا اهل سنت که خوندیم اینا به اللا انصافش در واقع قانونی و این چنین چیزی نمی‌شه بخوام یه کوپره رو کلان در دارن نصب بکنن چه قرقی می شه در جدید مگر اینکه مثلا یه نظام دیکتاتوری باشه که فرد برای خودش هر روز قانون قرار بده حالا <تصفيق> باقصه نظر نظام دیکتاتوری چه صد میگن لازم نیست لازم دور الان با كل شخص چه فرق می‌کنه ما اتفاقا فقط در واقعو نظر بیمه ما مثلا الشباب بعد به کلی بعد به کلی و از تفسیر، نوع من البیان، نوع من البیان، از نوع من از مون اسکوند القام، مورق القام، عممنا میخواد، یعنی؟ بس، لیست از البیان، نوع من البیان. آ؟ باید یک شر شر. لکن مزارف اینه که متعارف اینه که خاص و انواعی که خاصه، یعنی بعدی دی مطرح بشه تا تصرف کنه نوبت به تصرف نمیرسه که بگیم تعمیم حالا ممکن است شما اینطور بگیم ممکن است تعمیم و تخصیص باشه خب بعضی دیگه‌ای وقتی به نص نداره بحث نص اصولا نیاز به مقدمات بیشتری داره و بحث دوم این یک بحث بحث که مرحوم آزیا مطرح کردن که اصولا جدل بین خاص و عام همیشه جمع عرفی است اصلا بین دو تباین نمی بینن که ما برای حلش کنیم تا همیشه جماوات بر همه جماها مقدمه اینم رایمون که مرحوم عازیارد اینم خلاصه بحث قبلی بحث بعدی رو مرحوم استاد و دیگران توی مطلق و مقید بودن که با عام و خاص هم می‌خوره اما من فکر می‌کنم بعضی جا دیدم نسی که در بعد از اون یعنی من چیزی نوشتم با مجملون بگیم حالا ما بحث مجملون بیان چون مجملون هم یه رابطه ای با عام و خاص دارن با مطلق و مقید هم با کل احواص ظهورات داره بحث مجمل و مبین رو مرحوم استاد تو آخر این کتاب حاضراتشون آورده. مادون آیخویی اگر اولین شاپی که من دارم خدمتشون باشه، شاپنده باشه. در ضمن این شا هم جلد آخر المجمل المبیان که 1986 تا 88 حدود دو صفحه ایشان بحث مجمل و مبین بودن خیلی مختصر بوده مرحوم استاد. طبعا شون قاعده ما بوده که همیشه عبارتی مختصر ایشون در بحث مجمل مبعی ابتداعا یعنی بندی نکردن اگه بخون آنون عنوانبندی بکنن بحث چند بحثه بحث ایشان بحث اول ایشان یک تعریف مجمل مبعی دو اقسام مجمل مبعی سه آیا مجمل مبعی واقعی یا اضافی هم سغرایات مجمل آنوانی هم بعض در سغرایات و بعض در مسادیقیشون چهارت رو بحث کردن عنوان هم کتابشون نردن شما می آنها عنوان ببین به کتابیشان در وقت اول که تحریفشون مجمله هم تعریف ارتیز چیز خاص نداریم ما در اصول چیزی به عنوان مجمله بیان نداریم مجمله در ارتونی که اجماع داره پیشیگی داره و بیانمونی که واضحه بیان خودش معنی این تعریف. روش به تقسیمش و اقسامش خب چون خیلی چون گفتن صارن مجمل حقیقتا مجمل اخرا به اصطلاح و این فرق بین حریضی و حکمی رو ایشون از این باگذشتن طاعاتن در مراد استعمالی مجمل میشه حریضی طاعات تو مراد جدی مجمل میشه حکمی به تربیر ایشان حالا اینا تقسیم بندی ایشان بله بعدم باز یک تقسیم دیگه کردم که گاهی اجمال بذات گاهی اجمال بر عرضه مراد ایشون از اجمال به میشن کل لفظ مشترک از ایشون توی جلده اول مشترک قبول نکردن ما هم در دو توضیح دادیم که چون کسایی که قائل هستن به مبنای تعهد اینا دیگه قاعدتن مشترک قبول نمی کنن. کسایی که قاعد به تعهدن مثل منوهای خوبی مثل اولش اینگه هم به تشریح اصول الاسول محوم و لا در بنده قائل شده بعدم مرگومه چیز هم قایله رقایت الازهان آشانده اسمم. آه خوبی هم قاعده. به تعهد معنی تعهد از کردم در محل خودش به این معناست است که بعض و دلالت الفاظ به تعهد ماست رابطه ای بین لحظ و معنی نیست. این چون بحث لطیفیست من چند بارم قیب از حالا بحث مفصلش در محل خودش اشاره کردم این بحثیست که در اصول ما آمده که وقتی مثلا لفظ کتاب می‌گیم این معنا به ذهن ما خطور می‌کنه این رابطه بین این لفظ معنا چیه؟ چه جور تحلیلش می‌کنیم؟ می‌گه از ذهن ما فرض شما الان اونجا مثلا 5 تا چهار تا دوکمه هست هر دغمه‌ای یه اشاره خاصی میشه این دغمه اول یه اشاره بده چه رابطه‌ای چرا لفظ کتاب یک معنا به ذهنتون میاد لفظ آب معنای دیگه به ذهنتون میاد چطور میشه این هر دغمه‌ای یک معنای روشن می‌کنه این رابطه بین این الفاظ و معانی چیه البته این بحث های دار قوی تریم خب بکن اصولین ما در این اصولی متاخل مثل همه ها خوی و دیگران هم به همین مقدار بحث رابطه رو بررسی کردن که معنوی واقعی نیم جهاز ارفانی، کشف و شهود و حرف هم توی لفت هست حالا که کردیم که درجاتی از رابطه تصویر شده یکی این که رابطه ایلی و معلولی است که این دیگه از همه بالاتره مثل رابطه بین همین دبنه باش را بین آه باست تر بودن بین یخ با سر بودن آتش با محرق بودن یه رابطه ایلی و است که خب مشهور این در بین اصولین عبال حسین بسری که از علمای معتذر است از علمای ما هم بعضی ها نسبت داده شده خب در حد شهرت نیست. رابطه دوم رابطه معلولی یعنی در حد علت تامه نیست در حد اقتضا رابطه این چیه؟ خب اینم بردی ای نیست رابطه این یک نوع رابطه واقعی است، با این رابطه واقعی بر اینو اساس یک رابطه غریزی درست شده. یعنی اون رابطه رابطه واقعی است، نه رابطه اعتباری، بلکه بر اساس یک نوع غریزی که در انسان قرار داده شده، این رابطه برقرار شده، بر اساس یک نوع رابطه قریزی به اصطلاح. این بحث رو هم ادعای های غربی فعلا قبول دارن و کسانی که غالبا به نظریه انگیزه شرطی شده انگیزه انگیزه شرطی شده در بحثش رو در مدرسه توضیح دادیم اینا غالبا و ما برای اولین بار توضیح چون با آغازی خیلی حمله کردن آقا میگه تلازمشون به اصطلاح ذاتیه اما جعل متلازمن جعل طرفی اعتباریه خیلی به هم حمله کرد آزی م... مسلک خاص چیه بحث داره میگه اون تلازم بین لفظ و معنا ذاتیه اما اینکه لفظ آب برای این این جریه ممکنه آبو برای مثلا نام قرار آب برای کتاب قرار این دیگه جریه اما خود تلازم ذاتی است. ما برای اولین با خیلی بازیا هم بکنی که بگیشون مثلا آب روشن دیگه ما در درجه تصدی داریم که شاید مراد ما را موازیه همین انگیزه ای شرطی شده از نظرش ولی این یک رو به اصطلاح تراوث غریزی است یعنی این در ذات انسان در غریزه انسان این هست همچنان که میاد ایجاد رابطه میکنه به این دو چیزی که ایلیت واقعی داره بین آتش و بین مثلا دخان بین آتش و حراره انسان در غریضی خودش حیوان هم همینطوره اون آزمایش معروف که رو کرده انسان و حیوان همینطوره یک امر غریضی داره که ایجاد رابطه میکنه به این دو چیز ولو علفه تامه نرداشه حتی اختزام نداشته باشه اما این در ذات ماها هست مثال سگ هست که وقتی مخازن سگ قذار بوده، یک زنگی می زند. بعد از 20 سال یک بار زنگ زدم و قضا نبود. دید همون لعاب به دهان سگ جایی شده همون انفعال. یعنی الان به جای قضا این زنگ زدن ایجاد داری کنه. یعنی این زنگ زدن جای قذار گرفت. مگر قضا جلوش می زدش به دهانش جاری می حالا تا زنگ زدن لوا به دهانش جاری می شد. لوا قذار این اثران انگیزه های شرطی شده و غیر شرطی شده این لفظ لفظ انگلیسی که به فارسی چینیو ترجمه شده داریم بگیم بحثشون در, بحثش در ادامه من میخوام وارد این در فارسی اینجور ترجمه شد مراد از انگیزه علت یعنی علت های واقعی و غیر واقعی خود غذا علت واقعی زنگ زده علت غیر واقعی که در این اصطلاحشون انگیزه های شرطی شده اون غیر واقعی رو میگه مثل زدن. ولی ازا این استلاح بودشن های شرطی شده انگیزهای غیر شرطی شده مرادشون از های شرطی شده زنگ زدنه و مرادشون از های غیر شرطی شده اون عبارت از, از مسئله خود قضا این غیر شرطی شده شرط هم در اینجور همه این رفت در واقعه حالا من یه بخش می بکنم هده از بعض از مؤسرین ما هموز آدم همه ماهی سر ایشون این یک این عقی برتن راسته بودن همین عبیده بیرسه که به انگیزهای شرکی شده ظاهرن تو غربی ها زیادی نظریه رایش شده پس هر تا آزیان به نظر همین بوده چون در زمان آزیان خود آزیان روانشناتی جهی تو کتاب های روانشناتی جی. هر تا نگه کتاب های نگاه کنه هست وقت مفصلی سنگیزهای شرکی شده و مفصل وارد شدن. این نظریه رو ما توضیح دادیم، هم از علمای ما ملمای اسلامی مورد از ما اسلامی در بحث اخلاق اخلاق فکریسی یا نه سعی کردن فطری بودن رو که ما مثلا به خود رو میفهمیم دروغ بده یا به فسر وجدان خودمون میفرهم واسویی خوبه اونا هم سعی کردن چیز رو به انگیزه شرقی شور کنن بکنن الان غربیان هم جو تفسیر میفمن اما غزالیو اگر واقعا در کتاب مستصفای غزالی من خوندم چون بحث منفصل کردی دیگه اینجا نیست رضالی در مصطفا مستخ... معترضه که این حسن غروحی که ما در اخلاق میگیم اینا از انگیزه‌ای شرقی شده هست. این اشتباه اندیشه شده ما مثلا خیال میکنیم جو گفتن خوبه بده یا خیال میکنیم راست گفتن خوبه شلون منکر به عقل وجدان اخلاقی استرا یا ضمیر و قلب ممکن است غروه غری است اون میگه این که ما وضعیت از حکم به حس می‌کنیم یا به قوب اینا از انگیزه‌ای شرقی شده هست. مثلا بچه بوده راست گفته تعلیت هایی دشتن تشییق بشه دادم این کم کمک منشأ شده خیال میکنه راست گفتن همیشه توش تشریح داره مثلا خوبه این خوبیش از اینجا میگم دوباره دوگفت گفته کسری زدن خیال آل میکنه گفتن بعد این تصویر تصویر میکنه یعنی بعضی از کی آل که مثلا شده جدیدی نه اشخاص تصویر میکنه اهل مصرف من اول شنکندن تصویر داره که به انگیزای شکی شده اخلاق رو تصویر میکنه. از داری همون حجت دستان بورد و که مکان این هم نظریه سوم بود از کردن یه نظریه هم شبیه اینه اما از این زریفتره که تدایی معانیه که مثل مرحوم مزفر تو اصولش داره اون تدایی معانی هم هست این تا اینجا چهار مرحله چهار مرحله از رابطه مرحله پنجم که این رابطه رابطه اعتباری است به این رسومان این رابطه اعتباری هوبال مشهور. رازه استواری به این لذزمانها، دیگه هوال مشهور. لکن این مشهور رو خود علمای اختلاف دارن مشهورترش تخصیص و لذزمان است که ما رو توضیح کافی دادن جهش نیست. از اون زایسرش اختصاص لفظ است که کفایت وارد شده. از اون زایسرش هر مرکم ازشون سینه سوامی که جعل این علامات نسین علاماتی که در راه میزنن، سنت خاتهران بیشیومه. از جعل علاماتشان تفسیر کرده. از این درجات داره اقوای درجاتش نظریه کسان که قاعده به حقوریت اعتباری به این لفظه معنی هستن مثل مرموم استادم آید بجنوردی آید سیستانی هم قاعده به حقوریت اعتباریست بر از این اعتباری بودن درجات داره اقوایت حقوریت اعتباریست از افش اختصاص و لفظه چند تا که مطلب اخرین چند تا شد 5 شد مطلب 6 شد عدم رابطه بین لفظ و معنا حتی در میو را آیه رابطه ای نیست یک نوع قرارداد اجتماعی است یک نوع تعهده حالا یا اجتماعی یا فردی فرضون کردن من تعهد کردم با شما که هر وقت خواستان این معنا رو بگم میگم کتاب شما با من این تعهدو کردید که الان غالبا اینا که در قالب فرمال سیتیم مصرف مطرح کردن غالبا قاله غالب به نظری تعهدند این روابطی هم غالبا رابطه اجازه نمیشه لازمه این رابطه با هم باشه تا این رابطه با هم بدونه که اعتراض معنیش اینه دیگه حالا این مرحله تعهد شرح چون آی سیستان علامه فرافر نمیذونه ایشون بحثه دو تا اشغال به یعنی اشگاهی در مکتب تعهد توذیه که این اشкала جواب نمیده این اشاراتی که ایشون بیان وارد نیست دیگه خود مکتب اعتراض اختیار یک شرعی داره بیانی بشه توضیحی داده بشه که و اشکالاتی که به مکتب تحفظ وارد شده از این شاید تا اونجایی که من میدم خیلی هم احاطه ندانم در اشکال قرده یکی تو کتابشون دیدن به نظر ام نیاد که مکتب تحفظ باشن اون ها در برسی هرمونتی سلام, سلام, سلام پس بنابراین از الیت ذاتی بگیریم، از اختضار بگیریم، از رابطه غریبی بگیریم، از رابطه تحفظ بگیری عدم تاخ پس اقواش میشه الیت تاب بین لفظ معنا از افش هم بیشه تعهد از اف به این معنا که رابطه ای وجود نداره یک نوع قرار داده روز میگم آبیانی این طرح دو میگم فقط قرار داده یا قرار در جامعه هیچ رابطه این بین لفظ و کسایی که قایل به تعهد میشن یکی از خصایص کتاب اونها خیلیه مطلب روز مجمر بهتون سوال مفصل شده ولی من بعضی مقاله کلیدیه در اصول رو تکرار می‌کنم متعمداً نه اینکه اجازه از باب غفلت چون خیلی اساس داره چون به این تقریرن که من گفتم آمیگه ننویشتن اینکه چاپ کردن نه که من دیدم چاب شده اول در دفتر باشه ما این یک نظم علمی نوشتین این رابطه رو از رابطه عقوا شروع کنه تا ادب رابطه که تعهد باشه این پنج مرحله و پنج غور در مسئله است اگر معانی با انگیزهای شرکشه دو تا قرار در کتب روانشناسی تدایی معانی با انگیزهای شرکشه دو تاستی یکی نیست میشن تا اگر یکیش قرار دارم میشه تا. دار. علاقی که به ما این اگر کتابی بود در زمشته ها ایران خونده میکرد و حتما عرض تو کم اموری چهتا قرار اصول به نام قرار گرفته چنگیم از انصافا این درسی دانشگاهی روانشناس بازار پیدا بشه این هم یک دوره روانشناسی نوشته هر گام داره هرجای دا ما نما که غزالی در بحث انگیزه شرطی شده فقط اجمالاً بوله الان خب خیلی بحث کرده هم. الان توی روانشناسی مثلا چند بار باید تکرار بشه تا این انگیزه شرطی بشه مثلا پنج بار زنگ بزنیم آیلو عابدهن میاد 6 بار زنگ بزنیم 7 بار بعد از اینکه این انگیزه شرطی شد بعدی شرطی شدن باز چند بار نقش بکنه تا اون انگیزه شرطی شده از کار بیفته با ذهنی رابطه بشه با زن رابطه پیدا میکنه با سیراننده آ باز اون رابطه از بین بره اون انگیزه شرطی شده باز بشه حالا حالت طبیعی خودش غیر شرطی بشه باز اینا رو مفصل اینا بحثه من که از ابن غزالی نیست که هر خلان درامیشون جدید درباره انگیزه های شرطی شده گفتن مثلا بگیم غزالی بعضی از در ششم هشتم که شما ایشی پیغام فرستید گندش میکنین که مثلا در قرن ششم هفتمی کی گفته بله در قرن هفتم اصل مسئله گفته الان خب انصارم پیشرف شده خیلی روش کار کردن این مسئله کار شده غزالی روش کار نینده غزالی فرما توضیح کرده. گفته شما حسن قوه عقل این باطل این عقل حکم نمیکنه ما چیزی نام وجدان اخلاقی نداریم طرز اینه پس چرا میگیم صدق حسن این از رو انگیزهای شرکی شده؟ الان در غرد به اتناسی در این کتابش حسن برهان و اندیشه هم از رو انگیزهای شرکی شده میاده حالا اون عقل عملی بود این عقل نظریان خراب میکنه میمخوام بارد این بحث ها بشن مثلا که رفتی الان به بحث ما نداره حاصل این بحث با این مقدماتی که این بود که مرحوم و استار ما مشترک نداریم. نمیشه من نمی بود تو قابل به تحبا نمیشه شه من تأخیر بگم بگم شیر یعنی این معنا باز بگم شیر یعنی اون معنا باز تأخیر یعنی شیر نمی شیر چون ایشون رابطه بایل داری اگه کسی رابطه قائل بود مشترک بایل تقدر فریف خب بگیش شیر و آب بازی چیزی نبیشه اضافه می کنیم یه شیر هم بگیش شیر هم باتل الكتاب المكتوب اللي لا نا. لا يقول قبل وبعد اكو قرارات تعرف يعني انكي در فارسی چند تا معنا نمیده اما این معانیش تله تعهد با اون اضافاته مثلا میگه رفتم تو جنگل یک یه شیر بسیار مهیبی داریم خب این با این اضافات اومد من که شیر ابتداء چون اشون میگه نمیشه ماذات دو دو تعهد بدیم صدات تعهد بدیم از این بخواستم این که نزده خارج شدیم شو این بحث لکیجی بحث بسیار مفیقیست و این که همیشه در ذهن باشه ایشون نوشته قد یک اون اجمال رو به ذات که لفظ این رو مقناه معروف ایشون نوشن شون رو مقناه خودشون مشترک قادر میزن ایشان شون نمیشه انسان خود تأخواد مختلف کده یا لفظ آب هم لفظ مایه باشه هم لفظ عندنا نه روندی چلی باشه این چین چیزی رو نمیشه تعارض کرد بعدش هم او بلاعرب که امیرسن آقای مراکی رو گفت این گفتن من نداره فقط نکته دقیقی که در مذهب ثروات ایشون آورده در که از کفایه نهل کردن که آیا اجمال و بیان از امور واقعی هستند یا از امور اضافی هستند مراد از امور واقعی یعنی پی نصرعن وجود دارم ما باید به بره مراد از امور اضافی نه اصلا فیناسول هم وجود نداره این یک ذرافتی داره. یعنی غیر از حالا بحث اجمال و بیان اولا تصور بکن اخلاص به اجمال و مبین نیست ما الان مثلا فرصیم بحث تصویب که اهل سنت خیلیشون قالو تصویب هم این در حقیقت همینه اینم هم یک جو همین بحثه خیال نکنیم که بحث واقع تو اینجا سو اجمال یک بحث ذریفی که آیا این چیزی امر واقعی یا امر واقعی نیست مثلا اگر مشهدی فارسی در باب شراب غیرنگوری انگوری مثلا این که الان از الکل مولکول در خارج بشه چوب کوله بشه نه نشاسته بشه این شراب های غیرنگوری رو یه مشهدی مثلا فارسی به ارشادش یا حرام و یه به ارشادش یه حرام نیست مثلا منوال مثال با قیاس ارشاد اینا از نظریه تشریع یه هر دو درسته این چی میدونه؟ این نظیره نظرش اینه که این حرمت یا واقعی نیستن اضافی هستن این نقطه رو به این بحث تصویر رو که در اصول دیدین این نقطهش اینه و من توضیح دادم چیزی که الان در اصول ما نتوارد یا تصویب اشعری مشتری مورد واقعیت علمی نداره اصلا خود عبالحسن اشعری که رئیس اشعره است اهل سنت بهش نسبت بده که قائل به تخطیر مثلا قائل به تسدید نیست حالا، خالص اشد انواع تصرف رو در رسائل بیشان نسبت دادن بعد از مرحوم صاحب مرحوم شیرازاری مرحوم استاد ما عین دیگر ها به اشاعره نسبت دادن اصلا به خود اول حسن اشعری در کتاب الهکام چون یه جوری چون ایشون نوشته میگه و نص به ال حسن الاشاعری از تصریف و تخطیر جز جزء به تخطیر و اون تصویبی رو که بحثش هست این همی که از بحثه کلیدیست من گاغای تکرار میکنم متهم ندم این بحث رو مرمون شیخ در حجید مدننا آورده بحث تصویب رو این اشتباهی رو خداده علمان ما دنبالش ردن بحث تصویب و تخته اساسش در اشتهاد یا یک نوع احس. و اون یک اساسی داره اون اساس اینه اولا اونا مؤسردن که اده از احکام رو پیغنبر بیان نکرده و این نزاع از زمان صحابه شروع شد نزاع، نزا ولذا صحابه مثل ما فکر نمیشه ما مثلا شیعه هستیم. مثل میگیم همه احکام برام شده پیش امام زمان دست بانند ما اینجوری ای صحبت بمیگیم اونا این تفکر نداشتن اینا یه معدودی بودن در مدینه آلا مدینه خود چقدر فرسندی بی سزا نفس هستند من با مثال كل ادل یه این و صحابیه که جاهای دیگه رخداده این ادلی نبود چیزی مثلا تو این مسئله چیزی از پیغمبر نرسیده پیغمبرش شراب انگولی رو حرام کرد اما شراب انگوری نه مثلا اون ربات سوش بر روایت مطرح کردن ولی در اون زمان میگفت مثلا سوال می‌کردن پیغمبر در بابه شرب هر حدی مو اگر نکرد. کرد خب دقت بکن یعنی اینا میوندن قبول می‌کردن که نیست پسر ما با اونا اینجاست ما قبول نداریم که نیست. چند شد مثلا؟ اونا میانن قبول میکرد که در باب شربت هم حدی نیست حالا که حدی نیست چه کار بکنی؟ یکی میگوه حدی نیز ولیش بکنه. چون پیغانبر هم نداره حرام هست اما حد نداره نوست خیلی از محرمان ریبر حرام هست حدی حد نداره که یکی آمد در زمان عمر زاماد داور شد فرض هر امام شراب خورد مثلا به آیه تمسک کرد تو چون علی دینه ترو فی ما تعمو عزت کبو انسان مستقی اگر مستقی باشه و تقوا داشته هر غزایی میخواد بخوره من شراب بخورم که چه سوال ده من مستقی هستم ایمان به خدا دارم هر چی بخورم این منشأ خلاف شد عمر ثابت چایش بخورید یکی واویش کنید خدا نه اینکه غذا چیزی یه گفت چند تا شلال های یه گفت چند تا تو بوشی بزنید اینجور چون این اونان نسبت میگن توی رواست ما هم هست، ما البته چون رواستی سریعه برتر قبول بکنیم هم در تقییر بازمشی امین اون معاملین پیشنان که ما بیاییم این رو به اصرا حد قصد هشتار تازیانه ببینید تصور رو خوب دقت بکنید اونا میگن حک ندارد تو بیاد این تصدیل رو که ما مطرح میکنیم با او از زمین تا آسان فهم میکنم میگن حکمی پیغمبر برای اون قرار نداد. این یکی دو چون حکم نیست واقع نیست بقیقت این شما میگین چطور هزارات میگن تصویب میگن هر رئیس مشتبیشت واقع چون واقعی نیست اونا تصورشون من ارزم شما در بحثاتون حالا ببین با شاکه معاصر اهل سنت ما این بحث کنیم ببینید در زمان صحابه‌ای واسه صحابه. کیش در زمان حاضر اونا میگن چون نیست دیگه واقعی نیست چون پیغمبر نفرمون دیگه این واقعی نیست حالا این که واقعی نیست چیکار باید بکنیم هر}\,\ه همیشه یک چیزی هست که انسان ادعا میکنه بعد یک کمیاره. چی کار واقع چی کار یه کمیاره پس این پس چیکار بکنیم وقتی که واقعی نیست پس چیکار بکنیم یه بود که جلو برش کنم چون نیز برش بکنم اون سه از گناهان که حدی نداره این هم برش کنم یه رعای آمد که بالاخره حرامه یکی اینم من سابقاً شرح اصولیش هم دادم یکی از نکات مهم این یک نکتهی ای که اگر سابس بشید در کل قوانینه که اگر مقتلح که مجلس و شورا و این چیزا اه. اصلا کلا جایی که یک قانون میاد همراه اون قانون هست که خود شری یعنی قانون مجرد تصویب و تشریب نیست خوده قطعه کنیم طبیعت قانون باید لوازم اجرایش هم باش باشه اصلا قانون معناش اینه چه امر وجودی باشه چه امر عدمی باشه که ما اصطلاح هم داشتنیم تنفیز قوه اجرایی مجری به اصطلاح یا عربا قوه تنفیزیه یه تنفیز همیشه باید با قانون باشه اصلا معنی قانون همینه اگر رو شراب نخورید معنیشینه که باید چاره وسائلی بگیره که شراب خودن محقق در خارج اولا من رو هم، وسیله‌ای نگیره چون معیل نکرده تحقیل بکنیم این دو راه بود راه ثبت این که قیاس بکنیم این منشه اصلا تفکر قیاس در اهل سنت شد. راه قیاس چی بود؟ اینجوری بود گفتن ما در شریعت مقدس حدودی داریم ببینیم این مورد با کدوی که از اونا نزدیک کره حکم اونه به مثلا ما در واقع حد سرقت داریم حد مثلا زنا داریم از زانیت و از زانیت, و از زانیت و از و از کلوارد حد کلوارد مرد جمعی حد قرض داریم حد محارب داریم اینما جزا الازین یه حاربون الله و رسوله آجا شارل خم محارب و مفسده آنها شعر بخم حکم زنابش رو بکنید. بکنیم چون ممکنون کسی شعر بخم بکنیم نفهم به یک زنی هم تجاوز بکنیم ببینیم اینا می نزدیک این استدالی که از انیرمانی نقل شده این همون قیاسه لرنم نه ادا شربه سکر و ادا سکر حدا و ادا حدا و حد دل فریه سوادو این مقدمات برای این بوده که شعر بخم با فریه همینطور هم اونه هست آدم های که شباز می کنم خب کسی بیشتر میگن نه همشون باید باید باید, باید ناموسی هم میشین یعنی انصافش کسی که شوربه هم می کن اگر واقعی با اصطلاع ایلوزیو با آمار صحبت بکنی اگر 70% درصد سفارش ممکن ممکنه دو درصد مثلا زنا بکنه اما مثلا دزدی کرده ممکنه نکنه یا مثلا محاربه فی ممکن نشه بشه از مستفیدش بسیار پایینی اگه به آمار کنیم با آمار, کن. با لغت آمار به اصطلاح یونزی با مدرسه تجربی در استراباتور حجزیه گزارش بکنید آمارش حتاً کم تره نظام یوان چی گفتن؟, گفتن پس این به از اون این کار رو چی بکنه؟ هر بقال یا قصابی هر نهست. این فقط وظیفه مشتهده. اگر غیر مشههد این کار کرد هرش قبول نمیشه. پس مرادشون این بود که اگر مشتهد و صاحب نظر در موردی که حکم ندارد به یک نتیجه برسه چون صاحب نظر و اهل خبره است. واقع شریعت هم طبق نظر اون میشه خب این افتداعا در شما سنگینه چون ممکنه یک مشرد بگه تعذیرش بکنه یک مشرد بگه حد شربخم حد زنابش بزنی یک مشرد بگه حد قرص بزنی پس سه تا واقع داشته باشید میگه نشال نداره چرا؟ ده خطوره نکته فنی رو ما هم میگن نقطه فنیش اینه که چون خودش در واقع حکمی نداشته در اینجور جاها اشتحاد کاشف نیست اشتحاد طریق نیست اشتحاد خودش درست میکنه. کنه شد اون کسی که قابل به نظرش اینه حالا مثال ارکیتون هم برسید بخواییم بزنید خود خود در اونجا قابل به تصویدن خود و علماء شیعن پس این خانه رو مخواییم یک معمار میاد یک کارشناس میاد میگه بیس میلونه که میان یکی زن که میگه بیست هنج سوال سؤال شما که آیا و نظریه یکیش به واقع میرسه دو خطا است یا هر سه خطا راستن خوب دقت میگه نه آقا هر سه شدسته <تصفيق> چون قیمت یک چیز واقعی نیست طبق تشکیز رهبات و اقلالی رهبت ها این تشتیف دربت ها روی 20 میلیون میده اون روی 12 ملیون میده اون روی 25 میلیون میده نه مختلفه, مختلفه. پس بگیم واقع مختلف. تصور بکنیم اگر دقیقه بکنیم فقای ما فتبای که اگر در تقریم اختلاف کردن باید معدل بگید این این اختلاف لازمه خود از بگید این تصویل چرا؟ چون میگه شما 18 و 20 جنب و 38 و 25 جنب بکن مثلا اون با مثال میشه 62 62 رو تخلیم برسه کن میشه مثلا حدود 21 مثلا پس قیمت اینجا 21 الان مثلا 26 چیدی تا اینجا 22 دقیق بکنید چرا آقایی میگن معدل ازختر ازال مغزمون میگن معدل بگیریم اینه ابرازون آخرات تو اصول تحصیل بشیم ای براتن اخوارت تصدی می‌ری یعنی اینم درسته اینم درسته اینم درسته اینو هم اولا همین بحثو تو فلو آوردم شما در اصول نمیگید یه قیمت واقعی داره یکی درسته گفتش باطله یا ممکنه هر دو باطله چون میگه این یه واقعی نداره قیمت متخوّر کردین یه چیزی میگه رغبت جامعه اینه که برای اینجا 20 میلیون بده چون جاهات محصول یکی میگه رقمت جانوی ایدن یکی میگه روشن شده می تو پس اون بحث تصویر اصلا موردش اینه بحث این نیست که شما خبر زوره از بیگه صحیح که میگه صحیح, ایده صحیح. ایده صحیح. ایده این این نیست این موردشون به تصویر نیست این بحثی که اینجا برموم آرخوی اوزن توی ظهورات هم گفته شده شبیه این بردوها بیدن بحث خیال در اموری که شهنش حریقیته توی فجرم گفتش رو شا تحجب بکنید اینه که ازدهی در لیالی مغمره میگنید کنید فجر عقبتر میره اون بحث در حقیقت این نقطه است خب یه قطعه آیا فجر یک امر واقعی است ما بهش ایل پیدا میکنیم یک امر حقیقی است که الان ایل این کارو میکنه برای هر روزی فنجه نوشته چرا امر است؟ اینا میان کاره زمین در نظر میگیرن اینجایی که شما تو قم هستیم میان این افق شما در نظر میگیرن نسل زنیم خورشید اگر 18 درجه مونده دارست به این نقطه ای که افق شما اگر میگن فرش یا امر واقعیست این محاسبش 18 درجه از حدود 19 درجه گفته شده 18 درجه مشغوله بین منجمینه هیفته و تا 15 هم گفته شده که از افعه اقواله این میان شما اینجا دادید افقتون حساب افق حیرتون حساب میکنن شما از خورشید وقتی به این نقطه افق شما 18 درجه شما میدونین این نصف چکلز میشه 18 درجه میشه دیگه چون کره کل کره 360 درجه است از این 18 درجه اگر این 18 درجه رسید به 18 درجه به افق شما به اون اگه حقیقی شما اون وقت میشه تجر لذا تر به دین لیالی و غیره ما ترمون زنگیش اون این محاسبه ستونی داره یک رعی یه رعی دوم میگه نه آقا اصلا تجر این نیست تجر خودش تبایانه اصلا تجر یعنی اون وقتی لیالی مقدره شد تباییون پیدا نمیشه اگر متحقه اصلا فرق چی دیمیست چی که اعتبار به فرق به تباییونه شما در یک شبهایی مثلا به 18 درجی تباییون میشه در یک شبهای 15 درجی تباییونه ما دنبال درجه نیست ما دنبال مسئله تباییونیم هر وقت تباییون شد اون فرق هر وقت هم نشد فرق نیست حتى يتبين لكم الخيط الادي ازنا این معنیش این نیست که حتى يتبين لكم السرج، طجر روشن بشه. طجر چی میتسه؟ پس بنابراین این این میگن لیالی مغمره فر روشن شد، اون ذرافت علمیش اینه، نه. حالا گاهی بهش میگن طجر امر واقعی یا امر نزوی؟ خیلی اضافی تغییر تا بیاد ازس، بلا زرست. ها هم تبیین خی تابیه از دست در دنیای مقدمه بی میشه. چه <تصفح> نور ماه ما نه. چه نور ماه. شهر روستا و نه اینکه که به خاطر چراغ اینه تاثیر نمیذارن. به خاطر برق و وسایل برقی اینه مش تاثیر نمیذارن. اون تأثیر به خاطر ماهه. اون موقعی دیگریه اینه چون این عامل خارجی این در اصل نظریه معروف علامه بود اینطور بشه به یک نظریه هم بود که یک چیزی درست, درست کنم به درست بکنن که نور خورشید در شب مناکنین زمین دائما روز باشه این برای زمین که خورشید یا خود به جز ماهواره در فضا که آینه که نور خورشید بین نقشه دیوونه باشه که دائما کار زمین چیز در علمی که اصلا دائما کریزمی روز باشه اون بحث بهترین باغتی نظری ما واقعه روشن چه تغییر قبیلی روشن شد پس در من این مناسبت بحث آی خوئی مطرح کردند که این نکته ای است که ما در اصول و در فقه بهش مقتلایییم که آیا این امر حقیقی یا نه که این تو بحث ظهورات آمده جاهای دیگر هم آمده بحث های دیگر شده که آیا یک امر واقعی است یا اگر امر اضافی مثلا اگر کسی گفت حد شب خرمه تاست یکی گفت مثلا تعذیره اونا میگن چون واقع نیست نمیشون بگیم یکیش اصاب یکیش اختر هر دو اصاب چون واقعی نداری این بحث تصویی من چند بار تکرار کنشون در حوزه های ما یک معانی دیگه جاری شده که این واقعیت نداره رسال الله علیه محمدان وقت زیاد گذرش عضو میکنه